ولم یکلکو شریکن فی الملک ولم یکلکو ولیون من از زل و کپر و تکبیرا و سلات و سلام علی خیر خلقی، و بریته سیدنا و مولانا حبيب الله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على الله محمد وعلى عليه وسلم سیما مولانا حسن ابن علي المجتبی عليه السلام و مولانا حجت ابن الحسن العسكري المهدي ارواحهمالقرب من از خدا. فلان الله علا آدای مجمعین من الان لا قیام الدين خوب امشب شب نیمه ماه مبارک رمضان بوی شب قدر میده میدهند شب نیمه خیلی شب بزرگیه از این به بعد شب های بزرگ در پیش شب های قدر در پیش و نمینم اولا سرش چیه؟ ولی شب های فرد جایگاهش رفیتره مثلا شب هیفته هم خیلی شب بزرگیه شب نوزده هم شب بیست و شب بیست و سوم، شب بیست و این از این به بعد این شبایی که فردند عزیزتره حالا شب نیمه خیلی شب بزرگیه علاوه بر عظمت این شب شب ولادت امام حسن مجتبی هست که ببینم خب نور الان نور دیگه ما تو این شب نورانی ماه مبارک رمضان یه شرح خیدی کوتاهی رو عرض می بر فرمایشات و مواعظ امیر علیه السلام خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام تو نحجل بلاغه نامه سیوی و یکمه نحجل شب های قبل گفتم الان از اول مارم از اون تا حالا که این نام سراسرش مموب از کلمات حکمت آمیزه. حالا امشب به این جمله رسیدیم که حضرت به پسرشون میفرمایند خیلی شنیدنیه، و مفیده برای های ما. حضرت به جوان خودش می‌فرماید که بیست تا آم ال حرام این چقدر این جمله زیباست. میفرماید که بدترین قضاها قضاي حرامه. ما نه ما خیام میکنیم مثلا بهترین قضا اینه که شیشلیک باشه الان به ما بگن بهترین غذا چیه میگیم مثلا چی هر که بیچی میگی ما همالا خودمون لو دادیم بگیم بدترین غذا چیه میگه شلقم مثلا دردون مثلا چی آشه فلان اما حضرت می‌فرماید که نه عدترین غذایی که آدم حرام بخوره بهترین غذایی که حلال باشه و یه غذای قض... الان آخر غذای حلال اصلا چاش نمیاد که موهنگ خراب شدیم چون <laughs> می‌گم خراب شده جوونامون خراب شدن ناراحت نشینوا پسرامون فاسد شدن دخترامون همون بی بندوبار شدن برای اینکه لقمه خوب نتونستیم به بچه همون بدیم بهترین قضاها رو بهشون ندهدیم این توجه بودم تو روایت دیدم آخر و زمان دو چیز اصلا پیدا نمیشه یکی لقمه ای که بگن حلال حلاله دیگه ناخالصی ندهبه پیدا نمیشه من دیگر بانک ها که اومده این سودای که میده دیگه همه هم کارت دارن دیگه خالص چی کجا پیدا میشه آخر زمان آدم بعد بگه دیگه حروم خالص نخوریم <تصفح> چون یه چیزی نباشه دیگه واقعا همش حرومه بنیانکنه دو چیز پیدا نمیشه دیگه آخر زمان یکی مالی که بگن صد درصد خالصه مگه آدم سر صفره مامزمان بشینه یه افتاری با ایشون بکنیم هرچی اون میخوره بخوریم حالا شاید اون نون خالی بخوره ما خوشمون نمیاد می رفتیم افتاری حاج احمد اونجا الان بوغلمونه <تصفيق> ما با آقا میخوریم نون خالی چایی هم نمیده اگه اون بره پا. اون بهترین قضاست چون حلاله و خدا میدونه اگه اونو بخوری اون شب تا صبح چه حالی داری از سوز و عشق و ناله و مال حلال خوردی دیگه ولی اون یکی رو میخوری مرنی دیگه چه حالی داری اون شب تا صبح مال حرام یه حالی در انسان با معذرت میخوان جوان آدم مال حرام که میخوره همش میلش به گناه، به قیبته به پشت سر مردم صحبت کردنه دره بله تو قعب خونه بشینه مثلا میگه حال میده اما حلال که میخوری همش بخوای نماز شب بخونی میگه بریم یه و لذیمی یه امشب شب. همون مالش شما رو می کشوند. صحبت نکنم بچه ها گوش بدین به این توجه بفرمین به خاطر این امیر نون جو میخورد ما آذاریم آقا بریم افطاری مرتضا علی <تصفيق> شما آذاریم آقا بریم افطاری مرتضا یکی گفت من افطاریش رفتم هر کاری کردم دیدم این نونه نمیشکنه من این نونی که حضرت میخوره هر کاری میکردم نمیشکنه دندونم نمیگیره اما حضرت میگه این بهترین غذاست، چون حلاله این نماز شب میشه این نور میشه این تو رو به خدا میرسونه. اگه از این لغمه از بچه به ما داده بودن ما بلونه چی میشهدیم بعضی ها خیال میکنن که مثلا محبت به اولاد اینه که به اولادش مثلا پیتزا بده میگه بعد میگه من همه جور زحمت کشیدم بهترین نه نه پیتزا دادن مال حلال بدی. بهترین قضا رو بشته میخواییم بهترین قضا بده بدیم مال حلال این خیلی جمله ایزیم بهصد تعام الحرام بدترین قضا اینه که آدم حرام بخوره یه... یکی از این فقه های شورای نگهبان من نمیخوایم اسمش رو بیارم یه روز من پای درسش بودم میگم من بچه که بودم مثلا توی 17 سالگی تازه طلبه شده بودم مهمم شده بودم منو فرستادم توی یه دهی مارم از اون تبلیغ دیم اینو من از اون شنیدم میگو همین وارده این ده که شدم خب چت خدا و اینا اومده بودن استقبال یه پیرمردی مردی اومد جلو خیلی هم به من همه اترام میشدن خم شدن دو اینا این خیلی هم اعترام اینا نمیکرد اومد آروم تو گوش من گفتش که اینا الان همه میخوان تو رو ببرن خونه خودشون ولی من پدرانه بهت میگم بیا خونه من به نفته خود داری منم خوشم اومد از این سراحت این چی بودم اینم خونه این. این بده ایشده اصلا اونم بود تازه هم گذاشته بودیم گفت رفتم بودیدم عجب آدم فقیریه اصلا میگو شب شبا نون میابود آب میزد نون و آب میزد یه خورده نرم میشد ما میخوردیم نه آید یه چایی هم چه غلطی ما کردیم خونه کت خدا رو بل کردیم مرغ و بوغلمون باید آمدیم اینجا حالا این, این تا آخر مارمزون میخواد سهر همینو بده افتار همینو بده اینا هم که قوه نداره من خوداشو از ایشون جد یه ای خاطره دارم براتون از این مرد تعریف میکنم میگو ولی میرفتم مسجد بایی میشدم نماز بخونم اینا اختیدام و های های گریه میکرد اصلا. اصلا سابقه نداشته من همون بخونم گریه کنم. زجده میزدم حقق میفتد گفت منبر که میرفتم همه حرف عادی میزدم داعتیا گریه میکردم منقلب میشدم اصلا احساس میکردم این جمعه داره بشه میگفت یه چیزایی رو منبر میگفتم که خودم هم بلد نبودم بعد میامدم بودم من اینو خود... کجا خون میدم تو دهنم میذاشتم میداشتم دارم رای اینو بگو میامدم من اینو کجا خونده بودم اینو رو منبر گفتم انایت به میشد ولی نمی که این مال همون لغمه هایی که این به من میده ده. این مال اون لغمه هست. که حالی نمیشه از اون نادونه. مجالس خیلی خوب خیلی عالی. گفت رفت تا شب قدر. یعنی شب 19. هم. شب 19. این... کد خدا اومد گفتش که آقا شما که خونه ای ما نیومدین من یه افطاری دارم شبای 19م بزرگان دهو دعوت میکنن خونه ما افطاری مراقباً بیا و من انقدر خوشحال شدم تا ما از افطاریای نجات پیدا میکنیم یه بوقلمونی بالی 10 15 روزم بگذر و بریم از اینجا دیگه یه قوه‌ای بگیریم گفت با سر رفتم حالا شب قدره شب ضربت خوردن و منم با اون سابقه که اصلا بسم الله میگفتم مجلس میترکی گفتم حالا امشب اگه بخوام روزه امینور رو بکنم دیگه کربلا میشه گفت رفتم همین حرف که میددم کلمات جور نمیشد جمله ها همه بریده میشد پیوند به هم پیدا نمی کرد مجلس هم مثل کبریت خوشت گفت هرچی روزه خونده یکی تکون نمی کرد همیشه مردم نگاه میکردن که اینه چرا اینجوری صحبت میکنه. کنه اومدم پایین احساب خود اینه مجلس خراب کردم اعصابم خورده اومدم که برم این پیره اومد گفت من مال حلال به تو میدم ناز میکنی، بعد میری خونه کت خدا چرک و خون می به کش به چش بهترین مال آقا مال حلاله بدترین مال مال حرامه این نماز قضا میشه یعنی آقا مال حرم میخوری شب خواب میونی نماز قضا نمیشه ای میگه اصلا میگه سعر که بیدار نشدم هیچی بلند شدن آفتابم زده این تعجبه من این قرادم قرآن میفرماید فلین زرل انسانو الا تعامه انسان باید به پا میخوره خوردن خیلی مهم جوون ها ما اهمیت می نمیدیم میگیم یه چیزی باشه بخور نه نه فلین انسان انسان باید چارچشمی به پا دهنش میذاره خدا وقتی آدمو خلق کرد می دونید اولین جمله‌ای که بهش گفت چی بود چون آدم هیچی بلد نبود تازه خرد شده بود تازه می‌خواست بیاد تو عالم دنیا گفت چی بخور چی نخور اصلا اولین جمله تازه اومد و گفت لا تقرباها زه شجره از اون درخ نخوری تکون نامن از ظالمین بیچاره میشه. گفت خوردن بیچارت می‌کنه. بعد یاد بگیری چی بخوری و چی نخوری لا تقرب هاذه الشجره بشم نگفت نخور اگه می‌گفتن نخور باید میگم چی لا تاكلها لا تاكل هاذه الشجره گفت نه لا تقرب اصلا اون طرف ها نرو اصلا به اون درخت نزدیک نشو چون ببینی دلت میخواد دیگه آدم آقا ببینه دلش میخواد سعی کن نبینی بعضی جا تقوا اینه که آدم از محیط گناه دوری کنه. آدم با تقوا اصلا مثلا منو آدم با تقوا اصلا میدون ولی اصلا نمیره میگه اونجا بریم سر میخوریم دیگه. من توجه بدارم نه اینکه بگه مردونه که بره و نگاه نکنه خب برو بیچاره میشی دیگه فرد حساب یعنی چی مردینه که بره و نگاه نکنه؟ ب... به آدم میگه اون طرف ها نرو حالا آدم میگه نه مرد اینه که اتفاقا برو و نخوره میگه خب برو ببین بیچاره شد لا, تق... لا تقربا نزدیک ببینی میخوای دیگه نمیتونی که لو خودتو بگیری بعد نبینی که نخوای بعد شد. ببینی میخوای دیگه نمیتونی خودتو کنترل کنی اما قرار زمین هست. اولین چیزی که به آدم گفتن گفتن چی بخور چی نخور اینجا میفرماید ببین میگه بابا حافظ میگه پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت من توجّه وا ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم میگه باوام بهشت به تمام داد منم بهشت و به شکم میده ات اون از شکمش ضرب خورد منم از شکمش ضرب از شکم همه انحرافات بشر از شکم شروع میشه اینکه چی میخوره میدونی آدم اولین چیزی هم که انسان میخوره چی آقا باش بچه ارتباط داره خوردنه دیگه دیدین اصلا این میخواد شناسایی هم کنه دهنش میذاره بچه اولین گرایش در انسان خوردنه همون هم آدمو بیچاره میکنه. کلاین زره انسانو اله طعام نمیدونم ولی بد نیست اینجا بگم زیل این آقا از امام باقر دیدم فهمودن که تغذیه غذا ما هم غذای مادی داریم هم غذای روحی و معنوی داریم. آدمی هم باید مواظب باشه چی میخوره هم مواظب باشه چی میشنده علمشو از کجا میگیرد معلوماتشو آگاهیهاشو اینا رو از کجا میگیرد دایشی ها رو که الان میبینید اینجوری شدند اینا مذهبیند همه جا آقا های اینا رو میکنند من گای خوبیشون رو بمبنید اینا حاضر هستند برای اعتقادشون جونشون رو بدم شاید مواضح نباشه. اما شب تو این بیت و لسن بگنه کدوم شما حاضرین برای امام حسن جونتون رو بدین میگیم ما انقدر امام حسنی نیست. میگیم چقدر امام حسنیم میگی کف میزنم میگیم میخوای کف بزن میگیم دیگه چی که میکنیم میگه قیمه شم میخورد موکرشم هست میگیم جون چی؟ میگه نه من زن و بچه دارم این من الان خانومم منتظر خدا بچه هم میکنیم ولی اینا جون میدن اینا حاضران کار انتغاری بکنن یعنی اینا رو آقا جوری تربیت کردن که حاضران برا عقیده نارنجک به خودشون ببندن دینامیت به خودشون ببندن تیکه تیکه کنن خودشون رو اما نه حالا مثال میگم آجا آقا بله بل شما ممکنه ببندی به خوده توجه میکنی <تصفيق> من مثال میزنم ببندی <تص> ای این. چی میخوام بگم چرا اینا منحرف شدند چون اینا را از بچگی از بچگی توی مدارسی تربیت کردند هی تو گوش اینا خوندن که شیعه نجسه شیعه فاسده شیعه چه میکند خوراکشون خوب خوراک فقط خوراک مادی نیست اینا رو خوب تغذیه نکردن کجا درس خونده چی خونده از بچگی تو گوش اینا خوندن اینا رو تر... با کینه شیعه اینا رو تربیت کردن. ما هم اینطوره خیلی آدم بد مواظب باشه که معلوماتشو رو از کی میگیره مثلا اگه از بی بی سی بگیره انگلیسی میشه یعنی جوان‌های ما رو اینا مثلا اگه یه مرجع تقلید یه چیزی بگه جوان ما چی میگه میگه آقا اخودا دروغ زیاد میگن اما اگه بی بی سی بگه میگه هاج آقای اینا کارشون درست میگه بی بی سی کارش درست کسی که میگه انگلیس کارش درسته دیگه شما اصلا اینکه بخون که فاتحه دین خونده است خیلی مهمه بخاطر من امشب به جوانامون میگم میگم این سایت ها رو زیاد نه چون شما قدرت تجزیه و تحلیل اینا که ندارین که مثل این کدومش راسته کدومش دروغه اما بدانین یواشواش شکل میگیره شخصیت شما با همونا یعنی شما همونجوری فکر میکنین که صاحبان اون سایت فکر میکنن دنیا را اینجور را داره میکنن نگه بخواهیم روایت دارد اگر شما پای منبر یک کسی بشینی دل بشت بدی یک ساعت را عبادتش کردی جانا به من دل بدی یک ساعت داری بندگی من را بعد ثمان اگر اون از خدا بگه اون یه ساعت رو بندگی خدا براتون می نویزن اگر از امام زمان بگه میگن این یک ساعت صرف امام زمان شد اما اگر چیزای دیگه بگه بغض شیعه رو در دلها بکاره اون یه ساعت خرج شیطان شده فلیان زور انسانو الى تعامه انسان باید نگاه کنه چی میخوره. من اولاد آخر اراعزم چند تا اثر لغمه حرام میگم همه رو که نمیتونم یکیش این است که لغمه حرام قصابت قلب میاره قصابتانه یه چی یعنی موعزه دیگه اثر نمیکنه. کنه ولو واعظ خود اماموسنگ باشه الان شما میبیند در قرآن هست به پیغمبر میگه اعنذرت هم املم تنزر هم لا یومنون میگه تو چه برای اینا سخنرانی بکنی چه سخنرانی نکنی اینا محال دیگه ایمان بیارن امام حسین آقا روز آقا شبا که حوش میکردن حج پشم میکردن و چی میفهم من جمعات امام حسین نوشتم فرموندن که کلکم کم آسن لعمری غیر و مستمع قولی همه شما نسبت به عوامر من نافرمانی میکنین خب گوش بدین کلام منم گوش نمیدین فقط ملعت بوتون و کم من الحرام چون شکماتون رو از حرام گوش کردین خب اثر اون لغمه حرامه امرو من صحبت میکنم هو میکنین حج میکنین حقه من دیگه اثر نمیکنم میاد آقای اون پای موعظه میشینه اما اصلا من اثر نمی کنه آقای بعدش هم میاد میره بیرون میگه این چی حرفایی میزد میگه اصلا آقا اینا چیه اینا که مال هزار سال پیشه این است که خیلی قدیمیه من یه جراتا سخانه می راجب راجع به قرآن یکی آمد گفت آقا این قرآن میخواد خواد مردم هدایت کنه گفتم چطور ببین همش میگه یا میسوزونیم آتیش میزنیم با اینا می مردم هدایت کنه نه حرفا دیگه آقا قرون وستایی می سوزنیم آتیش می زنیم تو آتیش می دازیم یعنی می نسل امروز با این حرفا تو هدایت کنیم <تصفيق> این اثر لغمه ای حرامه نه راجب من میگه راجبه راجب قرآن میگه راجبه راجب کلام خدا میگه که این خدا اینجوری می خواهد مردم می سوزنم آتیش می زنم بیایید تو چه گرمه بگم حسابی بگو با سوزوندن با آتیش زدن نمیدونم یه اثر لغمه عرامین است که دل آدم قصی میشه دیگه کلام اثر و عشقش نمیاد به یکی تلویزیون مساقه باش کردم گفتن آخرین باری که گریه کردی کی بود گفت 16 سال پیش تلویزیون نشون میدم هنر هم بود گفت اونو برای چی گریه کردی؟ گفت ختم فلانی بود چبون من شد رفتم بچه ها دیدم، منقلب شدم گریه شونزه سال بیش دل قصی میشه عشقش نمیاد معزه درش اثر نمی کند کم کم از نماز خوشش نمیاد کم کم از دعای کومل رنج میبره مثلا اگه بیاریش دعای کومل هی ورق میزنه می او شونزه سال بیگه اون درد بلا میگه این هم که بود تموم نمیکنه رنج میبره لذت نمیبره زیارت آشورا باشه لذت نمیبره ای به ساعتش نامه ای این پا گمپا میشه ای میگه کی میشه میشه شه؟ از دست این مدده نجات پیدا کنه از نماز لذت نمیبره از قراعت قرآن لذت نمیبره آیون اینا تو دعا ها اومده ازغنی حلاوت ذکرک. خدایا به ما بچه شون شیرینیت حرف زدن با خودتو ولی کجا لذت میبره؟ مثلا اگه بره ببینه که حالا چی بگه آیا اگه یه وقت بیان خونه شما نهار مهمون یا شام شما بگه که حالا این آجاقام اومده اول نمازمونه به جماعت باز حسابش کنه میگه بابا من نماز می‌خونیم دیگه صفر رو بیار کافر نیستیم که بعد رو بعد میگه یه نهار میخوای به ما به رو مسجد کردی و نماز میخونیم دیگه تا شش ماه بشت صفه میشه میگه یه نهار به ما دو پدرمون داره باید. حالا وای با بهت که بگی که آقا زیاد آشورام بخونیم اصلا قرر میکنه میره میگه بابا ویل لذت نیمه اما اگه بگی از این زهر ماریا دارم بذارم دستشو میماله میگه از این جلسات باشه منم بانیم لذت <تصفيق> از مجلس زیارت آشورال لذت نمی برد، از عبادت خدا لذت نمی برد، این اثر لغمه حرامه. بعد باباش میاد میگه که من نمیدونم چی کار کردم، بچه من از قرآن خوشش نمیاد، از نماز خوشش نمیاد، از مسجد خوشش نمیاد. من یه جا آقا نشسته بودم یه پیرزنی از من سوال کرد اجازه نمازش. که من نمازو اینجوری خوندم چه این نوش به قدری گفت ما در مسجد ولکم بابا هرجوری خوندی قبوله حالا میخواد یه ساعت اینا رو بگی ولکم بابا خوندی دیگه خدا قبول نه مثلا خوشش نمیتونه جواب سوال شهری رو بدی این امام حسین میگه ملعک بطون وکم میگه شکماتون از حرام پر کرد از حسین خوشتون نمیاد از موعزه خوشتون نمیاد این یک اثر یاسانی که دعاشون دیگه مستجاب نمیشه به پیغمبر گفتن که چیکار کنیم دعامون مستجاب بشه علاوه کل حلالا و قل صدقا حلال بخورین راستم بگین دعاتون مستجاب میشه اما اگه حرام بخورید دروغم هم بگی خا هم گریه کنی دعات مستجاب نمیشه بچا میکنی من دنت رو لعنت نمیکی خودشو میمالید به زمین می گفت خدایا حاجت منو بده خدایا بده من به حق نمیدونم حضرت موسا بده بعد اینجوری اند دیگه ببین رشوه می گیره. اما خدا نکنه آقا دخترش تراتون بگیره میره حرم امام رضا را چون میگه یا علی به پهلویش مثلا به پهنایش صورتش گیره یا علی ابن موسی به پهن شکسته‌ی مادر شما گرفت میسوه موسا وقتی رد می شدد گفت خدای من که قدرت ندارم ولی بله اگه قدرت داشتم کار این رو میدم بند خدا آتیش می گیره گفت موسا ده برابر اینم خودش رو به زمین به ماله من حاجتش نمی‌دم. مگر مال حرامو کنار بذاره اون این رشوه می گیره اختلاف هم می کنه اما وقتی گرفتار اینا رو من میگم رش میگیره یعنی مال حرام میخورد. اما خدا نکنه دخترش منجی میاد این بازی ها رو در میره. من دعای اینو مستجاب نمیخوام. چقدر؟ ما آقای هیچ زمانی من ندیدم شیعیان اینقدر دعای ابو حمزه بخونن این بی سابقه است واقعا. چون شیعا دعای ابو حمزه بلد نبودن تا 40 50 سال پیش. من هیچ زمانی ندیدم شیعیان اینقدر دعای عرفه بخونند. اینقدر دعای ندبه بخونند. اینقدر زیارت عاشورا بخونن. همه جا دارن رو میخونن. پنجه سال پیش کی بلد بودی این رو بخونه اما هیچ زمانی هم ندیدم شیعه اینقدر گرفتار باشه چون دعاها از گوشهاشون بالا نمیرد خدا میگه نه کل حلال اما باباهای ما حلال میخورد اما زیر کرسی دعا میکرد مستجاب ماشه چون حلال میخورد راستم میگفت اما زیر کرسی که نشسته بود میگفت یا به حق حضرت زهرات ما رو ناامید بر نگردون خدا دعاشو مستجاب میکرد اما ما آقایون بینا نمیدیم بعد دعای ابو همزه رو میخونیم شب تا صبح همه گرفتاریم همه میگیم ما رو دعا کن. همه هم میگیم به چه کنم چه کنم مفتادیم این مال لغمه حرام سه خدا عملشون رو قبول نمیکنه. روزه میگیرن قبول نمیشه. شه آقا بینین آقاییون شما کربلا بری وقتی قبوله که با مال حلال بری خب کسی با رشوه بگیره بره کربلا کسی رشوه بگیره خیریه بزنه انفاق بکند یکی بود آقا امام صادق مگر رفت شدم دیدم دو تا حالا شبه ایدم هست برد نیستیدم گفت دیدم دو تا نون برداشت پولشو نداد این چرا پول نداد بعد گفتم چی که شاید باش حساب داره شاید بعدا اومد این ورسر توی میبه فروشی رفت دوتا سیب برداشت پول اونم نداد اون چرا این ورسر هر حساب نمی کنه گفت دیدم رفت تو خرابه به یه دونه فقیر گفت یه دونه نون داد با یه سیب گفت بخور منم دعا کن پدر مادر منم دعا کن سرشان بوسید به اون فقیرم یه دونه داد خب رفتن جلو گفتم آقا تو دزدی نیکوکاری خیلیه داری آقا <تصفح> تو چه کاره گفت چطور آقا نون برداشی بولش نه دیسی و حالا آوردی انفاق میکنی میگی منو تو نماز شبتون دعا کنید آقا این چجوریه گفت شما کی هستی؟ گفت من امام صادقم خیلی ببخشی نوی جهل آدم رو جسور میکنه و من تعجب میکنم تو خاندان علی آدم جاهلی مثل تو او شما که کوه علم بود. اگر اگه چیزی به من یاد بدی من بندت میشم. یک چیزی به من, من یاد بدی من بنده ای تو میشم. که شما این آیه رو خوندین من جا ابل حسنه فله و امصاله ها هر کی یه حسنه انجام بده ما 10 برابر بهش پاداش میدیم. گفوره این آیه که معروفه بچه‌هام مرزا گو اینم خوندیم جا اب سیعه ها اما هرکی گناه کنه ما ده برابر نمی‌کنیم برابر گناه و یه برابر عذاب می‌کنیم اما حسنه رو ده برابر می‌کنیم گواره این آیه قرانه گفت من دو تا نون دز دیدم این دو تا گناه گفت بله گفت دو تا هم سین دز دیدم این چهار تا گناه گفت درست گو حالا انفاق کردم شد چهل تا چهل منهای چهار میشه سی خب اگه من اینجوری بندگی خدا کنم آلم رو میگیرم دیگه مال ما اینطوری آقایون میگه که حالا رشوه گرفتم انفاق کردم که چربلا باش دفتم که با خدا. خدا قبول نمیکنه کند آقایون خدا اون انفاق رو قبول میکنه که مال حلال باشد قدیمام مکه می‌خواستم برن میگفتن اول برو مال تو پاک کن بعد برو مگه با هر مالی میشه مکه رفت اول می‌ویدم مالشون رو خودشون میگفتم مالمو پاک کردم بتونم برم حج اینا هر چیزی که قبول نمی‌کنن که آخه بخونم آیهشو ان ما یتقبل الله من خدا از آدمای با تقوا قبول می‌کنه از هر کی که قبول نمی‌کنه هر روزی که قبول نی هر نمازی که قبول نیست مال متقین قبوله مال حلال خدا قبوله این توجه برمه و ما بدترین طعام مال حرامه امام بهش فرمودن دو تا نون دزدی دو تا گناه قبول داری یا نداری گفت قبول دارن گفت وظیفه دوز چیه گفت شما بگید گفت بعد مالو برگردونه به صاحبش دز بعد مالو برگرد تو که بر نگردون دیگه شد تا شد چهار چهار گناه کرده بودی به صاحباش بر نگرده شد تا حالا به صاحبش بر نگردوندی دیگه جایی دیگه دادی شد شونزد گفت تو خدا رو قیامت میبینی با شوندد و گناه مال یکی رو میگیری میگیری دیگه میدید گفت باید ثوابش کجاست خدا به عبر رو بر کنه مال حلال دادی که خدا در برابر کنه همین آیه که من خوندم امامم خوندن فهمودن انما یتقبل الله من المتقین به اینو آویزه گوشت کن خدا از آدمای با تقوا قبول میکنه یکی دیگه بگه نسلشون خراب میشه این نطفه میشه دیگه مال حرام میاد نطفه میشه نسل آدم خراب من این جمله رو خوبه بگم برای ما آقا من خودم رو میگم تو بدترین مدرسه ها من درس کندم ما بین چاقوکش ها درس کنم زمان شاب ما در مدرسه رانمایی میرفتیم اصلا این مدیرشون گاهی منو میبینه یک کموت فقط پنج بوکس و چاقو و اینا داره که از ما گرفته بود همه با اونا میومدن دیگه ما تو اون مدرسه ها درس کنم که زمان شاب بعد من صحبا که در اسرا میرفتم می میخوندم از اون مدرسه که همه چاقو کشم بودن در دیگه چیزایی دیگه شو نمیگم آه. میومدم بیرون میدم مرسای مجتهدی بابای ما نمیدونست من که باست چندومم بهش مثلا میگتن که این چندومه میگم نه اول دوم مدرسه میره نمیدونست اصلا یه مدرسه مارم داریم نمیدونست ببینه نمیدونستم ما اصرا میریم تلوگی تو بسیج من صحبت میکردم امروز می بابامم نشسته بود گوش داد اومد اومد این بیرون گفت ها رو کجا یاد گرفتی گفتم من طالعم بابا با من اینا مدرسه کوای فچ به من نگفتیم. همین دیگه آقایون ولی الان مدرسه غیر انتفاعی میدارن مای سالی 14 میلیون 18 میلیون از این نمیコナن میگن اسلامی باشه او کشیده اونجا دیگه چاوقش نمیگن همش نماز جماعت آخرش بچهش دانشگاه میره میگه چی شده من روم نمیشه بگم لغمه خرابه چون پدر ما لغمه خوب به ما میدار و تو اون مدرسه ها میگم ما, ای... ما نمیدیم سلالا شدیم و نماز که میخونیم روزه که سرمون سر به دینه تو مدرسه های غیر انتفاعی با این هزینه ها نسل امروز دارن اینجوری تربیت میشن این برای اینکه لغ... نسل نسلو خراب میکنند اگه لغمه دیگه باز بگم آقا بچو میگه در خانه اگر کس است یک حرف بس است واقعا آقا دگه باید کچی بگم من تو روایت دیدم اگر کسی یه لقمه حلال بخوره تمام ملائکه آسمان و زمین لعنش میکنن نفرینش میکنن حالا تو بچه‌دم اومده دارم نفرینش میکنن میگن این حرام خوره شکمش از حرام پر کرد ولی اومده قرآن سرگرده افطار شکم و از حرام پر کرده حالا قرآن, رو شد سرش. قرآن باید نفرینش کنه قرآن باید بگه آقا من گفتم حلال بخور یا گفتم حرام بخور تو حرف منو گوش نمیدی خودمو میذاری رو سره من میگم حلال بخور تو گوش نمیدی بعد اینو میذاری رو من توجه بفهم عردم تمام حالا دیگه ما چند تا دیگه نوشته بودم شد 5 تا این 5 تا آ بحث امشب بدترین لغمه بدترین قضاها قضای حرامه اینجا یه اینجا گفتم اینجا بیت الحسن دیگه اینجا اسم امام حسن باشه این خانه امام حسن این همه چراغ اینجا زدم تو بیرون این همه چرا اینجا این همه خوب کردم ببین گفتن اینجا خانه امام حسنه اما اگه امشب بقی بودی یه شب آقا یه شم, شم بالا قبر امام حسن روشن الان شده هر چی خونه امام حسن تو این کشور داره قرق نمو شما الان اگه امشب برید شادو عبدالظین این عبدالعظیم چهار پشتش میخوره به امام حسن مجتبی نوه چهاروم امام حسنه الان اونجا غرق نوره چقدر ظاهر امشب میگم بریم اونجا بقی نتونستیم بریم بریم نوش رو زیارت کنیم اما اگه امشب کربلا اگه امشب مدینه باشی یه ظاهر نیست یه سلام به حسن ابن علی بکنه یه هر جام بری اینم یه شب این شب گفتم بد نیست بگم هر جام بری مدده چی میگن میگن حسین قری حسین قری اما الان که کربلا باشی بین الحرمین قرقه میگن چش تولر داداشو شد اونجا رو کار میگن چقدر ظاهر میگن بریم تبریک بگیم برادرش متولد شده باز بگم این امام حسین یه زنی داشت مثل رباب میگن یه سال کربلا از اون یه سال همه‌ش هم زیر آفتاب این بنی اعتاب اومدن گفتن آقا سالمون است گفت و من به خودم اجازه نمیدم سه روز و سه شب پسر فاطمه زیر آفتاب باشه اما امروز روزه بودی دیگه امام حسن روزه بود جگرش رو پاره پاره کرد امشب بگیم جانم حسن جانم حسین به خدا هر دوش رو بگویب فاطمه بگو جانم حسن جانم حسین به از زهره بگو من هم حسن رو دوست دارم هم حسین رو دوست دارم هم زینب رو دوست دارم من همه بچه های شما رو دوست داریم این بچه بودن این ها بگم بد نیست اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول ما یه کشتی بگیریم کی؟ اینا خب شیش ماه با هم فرق داشتن دیگه امام حسن شیش ماه از امام حسن بزرگتر به اندازه یه هم، حمل وضع حمل امام حسن هم شیش ماه به دنیا اومد از نهایت نه ماه با هم فرق داشتن به اندازه یه حمله کمتر از ای. اومدن گفتن ما یه کشتی میگیریم پیغمبر استقبال کرد کشتی خوبه تو جنگ به درد میخوره اینا فنون جنگه خیلی خوبه از فوتبال بهتره کشتی یه جا به کار میاد از سواری اگر انقدر تو اسلام ارزش داره برن که از خمین جنگه شمشیر زدن نمیدونم کشتی گرفتن گفت تیرندازی کردن گفت کشتی بگیری اینا که کشتی میگرفتن خب رسمینه کچیکه رو تشویق میکنن دیگه دیدن پیغمبر هی میگه جانم حسن باریک الله قاب آفریم حسن بی بی اومد گفت یا رسول الله درست اینه که ما بیطرف باشیم اما اگرم بخوان تشویق کنن کوچیک رو تشویق میکنن شما چرا حسن؟ گفت نگاه کردم دیدم همه ملائکه دارن میگن جانم حسن گفت حسن هم غریبه منم میگم جانم حسن ما میگیم جانم حسن باز پشتش میگیم جانم حسن دیگه روز فرد شب شب جمعه هم هست چون شب مولودیه حالا ایشالله فرد و شب شب زیارتی حسین اطنالی فرد و فرد میکنه روزه رو میذاریم فرد شب به همین اکتفا کنم یک یه... کسی یه کاری کرده بود گفتن حدیث دارم براتون گفتن پیامبر از خونش جاسوسی کرده بود گفتن پیامبر از خونش نمیگذره جاسوسو همه جا اعدام میکنن بدون محاکمه همه دنیا هم نداره این هم رفت مخفی شد بهش گفتن جلو چشم پیغمبر ظاهر نشو ماها مخفیانه زندگی میکرد یه روز دیگه حوصله اش طرف این دهلیز خونش رو باز کرده بود تو راهرو تو تاریکی نشسته بود کوچه رو نگاه میکرد یه وقتی حسنین اومدن از پشت درش رد شدن دستان انداختن گردن هم این بارها دیده بود که پیغمبر اینا رو دوشش سوار میکنه رو قلم دوشش پیغمبر اینا رو سوار میکرد به مردم میگو من حسن رو دوست دارم حسین رو دوست دارم هر کی هم اینا رو دوست داشته باشه من دوستش دارم اومد این تا آغازها داره گرفت اینجوری گذاشت رو قلم مثل پیغمبر یکی رو رو این دوش رفت تو مسجد وقتی چشمش به پیغم اینیم مستجیرون به الله و به من. گفت من رو به خانه خدا کردم به خدا پناه آوردم و به این دوتا همین تاینو تا گفت میگم پیغمبر طوری خندید دندوناش دیده شد گفت بچه های منو زمین بذار از سر تقصیر خوزه شد اینیم به الله و به همان رو منبر داشت صحبت میکرد امام حسین که وارد می شد می دوی طرف پیغمبر هی hey, می زمین بلند پیغمبر منبر رو به که از منبر اومد پیغم این امام حسین رو بغل کرد می بوسید زیر گلوش رو می بوسید بعد می گفت خدایا تو شاهد باش من حسین رو دوست دارم هرکی هم حسین رو دوست داشته باشه من دوستش دارم خدا رو قسم می دیم در این شب عزیز به آبروی امام حسن به آبروی امام حسین همه ما رو ببخشد و بیاموندا ایدی کامل به دست با کفایت امام زمان به همه ما کرامت فرماید ایدی ما اصلاح امر فرج اون حضرت قرار بده اون حضرت رو به داد شیعیان برسه مسلمین شیعیان دعا کنید دارید دعا کمر آمریکا رو میذنه مسلمین شیعیان در همه جهان پیروز فرماید دشمنانشون خوار و ذلیل فرماید شر اشرار قدرتها، آمریکا و اسرائیل به خودشون بازگردند. خدمتگزاران به دین آیین مملکت مقام معظم رهبری ما تایید فرماید حاجات شرعی همه ما برآورده به خیر فرماید نصار روح بلند و متحر حضرت حسن ابن علی علیه السلام یه سلوات بلند بپرستین تا فیض ببریم.